سلام، روزتون خوش متنی که حاضر کردم و میخوام براتون بخونم یه, یه کم طولانی هستش متنی نیست که فعل ها با هم در ارتباط باشن جمله تموم بشه گزاره داشته باشه نهاد داشته باشه در حاله کلمات گنجوندم امیدوارم خوشتون بیاد و کلمات رو بتونید به همدیگه ربط بدین و یه جورایی یه گوشه رو ای بگیرم این شروع میشه میگه عشق 1359 ازدواج مادر شاه رفت رفاه رفت بابا آمد خانه بزرگ آگاه درس بابا من تولد یک شنبه تنها ورود کودک من آرام اندیشه کودک من کلاس اول دوست پسر من پسر آری دختر نه کوچه بازی پسر آری دختر نه مدرسه دلبستگی پسر آری دختر نه شک درس راهنمایی پسر آری دوست دختر نه امید علی حسن، مهدی، میلاد، یاسین، افشین، نعیم، ایمان، آری، دختر، نه، ناامیدی، شک، تفکر، علی، عشق، من، علی، آری، دختر، نه، دبیرستان، علی، عشق، من، علی، خیانت، پسر، آری، دختر، نه، علی، مهدی، من تنها پسر آری دختر نه دانشگاه پسر آری دختر نه مشروب سیگار دانشگاه آری پسر آری دختر نه هم دانشگاهی دوست پسر آری دختر نه صدا سیبیل ریش درس واحد ترم من فریاد من منم پسر آری دختر نه بحث شکوفه ایدولوژی نیچه شک ازدواج جامعه جهل جرم جذب پسر آری دختر نه کچلی سربازی قاشق عشق خاطره صف جمع، نماز خدا نصف شب کشیک من گریه حمام، آشخور غربت سردی پسر پسر پسر آری دختر توهی من میسم یک عمر نگاه عزیز میسم آری پسر آری میسم آری دختر نه من میسم گرمی وجود میسم امید حسار من میسم دختر نه پسر آری اشق من حسادت میسم عشق محدودیت عشق اشق محدودیت پسر آری دختر نه خانواده جامعه خدا کوچه بغض اسارت خانه تنهایی همجنسگرا پسر آری دختر نه پنج سال میسم ایران تنهایی درک همسایه، نگاه، ما، عشق، پنج سال، پسر، آری، دختر، نه پنج سال، میسم، من، شکست، دروغ، رفتن، میسم، دوست دختر، من، تنها پسر، آری، دختر، نه دلهوره، شک، پیچش، تردید، غم، من، افسردگی، ایران، فرار، ترس، پارتی، شلاق درد، زخم، گریه، تحغیر، پسر، آری، دختر، نه پاسپورت، زندان، خروج، آزادی، پسر، آری، دختر، نه مادر پیری، پدر حلالیت، مادر درک، پدر غرور، مادر حس، پدر ترس، مادر فرشته، پدر ترد، مادر تفاهم، پدر سرد، مادر اشک تظاهر لبخند، پدر تذکر، تلنگر ازدواج پسر آری دختر نه، من پدر مادر پدر مادر آری، پسر آری، تنهایی آری دختر نه من حمید، حمید من، حمید عشق، حمید زمین، حمید زمان، حمید دنیا، همید پایان همید آغاز همید تمام همید زندگی همید باور همید او همید نهایت همید دیدار همید بوسه همید آغاز همید امید همید کل همید شکوه همید گی همید آغاز همید رها همید رفت همید سرد همید درد همید اشک همید دوست حمید ازدواج، پسر آری، شکست آری، غم آری، دختر نه، حال من، راه آغاز، همه گی، هدف ما، پسر آری، دختر نه، رمان